جلسه سیوم از رساله اصلاح جعفری. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، السلام و السلام علیه سیدنا محمد و الامین. الله صلّا على آله و سلّم. اختلاف حصولیین با اشباریین. برمیگرده به عدله استنباط احکام شرعی و یقینا خارج از هیچ این هیچ اختلافی با این ندارد اختلاف اساسی اینها در یک مسئله مهم اجتهاد که اخباری قائل به عدم جواز اجتهاد و اصولی قائل به جواز بلکه وجود بشه به گفتیم یا اجتحاد در احکام که در اخباری دارن؟ برای به دست آوردن احکام شرعیه از عدله تفسیریه اجتحاد می یقینا اجتهاد در احکام مورد خلاف و نظار بین اخباری و اصولی نمیتونه باشه. و تمام مناقشه و نظار در اجتهاد نسبت به موضوعات احکامه. اخباری غایله به این که موضوعات وارد در لسان عدله غیر قابل تغییره و این موضوعات همون موضوعات سبوتی و واقعی و نفس که مولا اراده کرده بنابراین در بعضی از موارد که انسان بتونه تصرفی در موضوعات بکنه، اون محوط به ورود روایات و تفسیر به میشه نسبت به موضوعات ولی اصول این غایلا به اتخالت خیلی از براین و شواهد خصوصا به دخالت مناسبات حکم و موضوع برا فعلیت احکام شریعه لذا اجتهاد یک باب وسیع میشه در مسلک اصوریگی و لا یورتقا ادنا یعنی خیلی خیلی وسیعه به پایین ترین مراتب شد از موارد نمیشون برس، ولی اونطوری که اخبار این دارن میگن، حتی به آخرین نقطه اجتهاد هم انسان میتونه برس. پس اختلاف جوهری در یک مسئله اساسی اجتهاد اونم اجتهاد در موضوعات و این فروعاتی رو متفرع میکنن برای این که اصولی این به استنباد در اون موارد میشن اخباری به استنباد نیست و حتی اونها باید به حجیت استظهارات و استحصالات هم نیستن تنها ظهورات بردریجه قطعیه رو حجت میکنند. یکی از اون پروعاتی که مطرح بود مسئله خمس بود یکی از اون مساله مسئله جماعت بود و اینها در یک نقطهی با همدیگه اشتراک داره و اون قاعده در اصول عبارت باشه از اینکه آیا امور اعتباریه همون امور انتزائیه هستن یا با دیگه فرق داره این در صفحه 109 گفته بنابر تقسیمی که در علوم نسبت به امور میشه امور یا امور متعصده خارجیه یا امور اعتباریه یا امور انتزائیه با اون امور اعتباریه یا اعتبار ذهن یا اعتبار اقلاعیه یا اعتبار شرعه علا کل تغییر رتبه اول رو امور متحسله داره رتبه دوم رو امور انتظایی دارن به یک منشه انتظایی دارن واقعیت داره و منشه انتظا... امور انتظاریه یا خود متحصلات خارجی است مثل این که فوقیت و تحتییت و انسال اینها رو از فوق و تحت و اشیاءی که در خارجه از نسبت بین اون دوتا ما انتظا میکنیم که منشه انتظار واقعیت داره یا اینکه نه نه منشه انتظار خودش به اعتباریه که در اعتباری بودنش واقعیت داره مثل از جواز مباشرت زوجین ما زوجیت رو انتظار می کنیم پس منشه انتظار در امور انتظاریه علا کل تبدیل امور که واقعیت داره یا واقعیت تکبیلی داره یا واقعیت اعتباری داره حالا اصولی این احکام, احکام شرقیت رو تقسیم میکنن به دو قسم یک قسم امور اعتباری و یک قسم امور انتظایی. خود امور اعتباری تفصیم میشه به تکالیف و وضعیات و امور اعتباری اموری که عقل انتظام میکنه از احکام اعتباریه تکلیفیه مثل سببیت، مثل صحت مثل بطلان و امثال اینها که اینها رو در صفحه 109 نوشتیم حالا اختلاف جوهری در بین خود و اصولیین با قطع نظر از اخباریین اخباریین که اینها اخبار این رزن قاعد نیستن خود و اصولیین هم اختلاف دارن در اینکه احکام انتظاییه با احکام اعتباریه آیا فرق جوهری داره یا فرق جوهری ندارن یکی از فرقهای اساسی در مسلک مشهور در بین امور انتظایی و امور اعتباری اینه که اصل عملی در حکم انتظایی در موارد شک جاری نمیشه بنابراین مجاری اصول عملیه منحصر میشه به احکام اعتباری احکام انتظایی مجرای اصول عملیه نیست و بیش از 50 درصد استنباطات در فقه مواسه ما مبتنی بر اصول عملیه است. این اگر اصول عملیه را جاری نکنیم 50 درصد فقه ما بلکه بیشتر معطل میمونه. لذا عمدهترین مباحث را هم اصول عملیه تشکیل میده. خصوصا در مذهب نجفی کنها که به روزی بیش از حد اصول عملی چرا؟ خب تا میگی دید خوندن. نه که نه اینو بفرمایید که این با اون حرفشون اختلاف داره. آره وقتی این حرف اون صورتگین با اون حرفشون اختلاف داره. با هم نمی‌سازه. بلدا رو مثل قبلیان در اون مسئله امامت و جماعت آن سالین ها قبلیان میگه انتظاییه نمیشه. حالا ما حالت سابقه برای قبلیت داشته باشیم ما حالت سابقه زید رو میدونیم که همیشه در مسابقه اول سبت زید رو میدونیم حالا شک داریم استصاب بکنیم بگیم شک ما تونیم امتداری برگشت می به شک ما در منشه ایم و هیسته تابقه ما جریان امتداری منشه امتداری که ما نیست. نیست. نه خودش میدونستیم میدونست ما که نمیخواد از چیزی نه انتظار کنیم ما قبلی یا صفر قد دو اینا رو میدونستیم خب این از کجا هرچی دیگه طبت. طبت. نه فرقی نداره حالت سابقه داره دیگه داره. ما نه هیچ برقی نداره زید قبلا صادر بود الان هم بود چیزی دیگه شما سابقه تو حق و الان که شک میکنید یا تو رید شک کردی یا مطمئنا شک کردی منشأ دل شک یعنی امکان نداره شما شک تو منشأ نداشته باشید و شک در خود متن ایجاد بشه امکان نداره یک یعنی شک که شما به خاطر شک در متن شک در منشأ داشته باشید نه لازم همیشه شک در منشأش داشته باشه چجوری میشه در خودش شک داشت چجوری میشه منشأ باشه در خود شک داشته امکان نداره امکان که داره شخصی که داره شک کنه بعضی از مواجهی التفاتی نداره به اینکه این اصلا انتظاییه از اینکه ارتفاتی نداره قبلا زید سابق بوده همان شکل در سفقتش داره خودش ارتفاع نداره که مثل مسابقات دو یک ثانیه قبل اون سابق بود ده ثانیه بعد شکل میکنه اصلا ارتفاتی هم به منشه انتظایش نداره التفات نداره خواهد این شک ما شک ابلیگه شک علاوه علاقل تغییر این چیزایی که ما نوشتیم مشکور اینطوری میگن اگه حالت سابقه داشته باشه همین انابین انتظاییه اونها دیگه میشن امور اعتباری از انتظار خارجه ولو فل جمعه شبه این هست که شخصی با التفات به این منشه انتظار داره اصل خود این مشتبه میشه اینو میشه ولی محضاره که فرقی نداره فرقی نداره با این جز متوافقه اینه یعنی فرمای شما شبههی همی که مالد کردی. زمرهی برش مترسه نمیشه به این که این دوتا متوافقه اینه چرا شده در مکاس میگه ولی می مبرز میخواد دیگه این مساله مطبط به قبلش دیگه نمیشه چون مبرز میخواد مبرزم باید به اون شخص حاصل بشه دیگه باید بگی به بگی کردن. تمام میشه. اون قبلی منحل میشه میشه دو مساله. مسئله بگه نمیگه از اراحامه خب برای چی برگردی؟ نمیشه که مختزی نداره اون که حکمش نمیشه دیگه پشیمونی نداره پدر پور به پسرش بده دیگه نمیتونه برگرده که این حکمش واضحه چون این ترکیب چیه درست کردی؟ خیلی مرکم شدی مثل اینکه که میگن کسی از, سج... از خواب بیدار شد بعد نمیتونه سجده شکر بوده یا سجده آخر نمازش بوده حکم چیه؟ حالا قواعد کلی ترکیب گفتیم از اون صفحه 22-237 به بعد مراجعه کردیم این چی بودیم قبلا؟ مراجعه نشده؟ تا مراجعه نشه این اطراف بحث معلوم نمیشه یعنی ابهامات در اطرافش میمونه و چون ارتباط ماهوی به بحث ما نداره همه نمیتونیم مدرک کنیم ما به عنوان مثال که نزاع اخباری و اصولی در سه رسم زهوراته این چه ارتباطی به ریاضیات و الهیات و طبیعیات نداره و رو در کلمات از این اومده اون میخواد بگه ما به این زهوراتی که شما استناد میکنید ما قبول ندارید اصول عملیه رو بذارید کنار این اصول متورم رو بذارید کنار اینو رو بخوان بگن که شهید و محقق کرگی و علامه خیلی به اصول بها دادن بعد اینا از این بره کردن و هیچ دلیل نداره برای اختلاف بین اخباری و اصولی اینا گفتن بای شما جر میده بای ما جر نمیده بای جر میده اونا هم کشیدن این بره به اساسی نیست ما میخوایم یه مقدار معلوم باشه اونا هم مخالف مخالق اونا مخالف استظهارن شما در هر روایتی در هر آیت شما خواهی استنباد کنی افکاری میگه نمیشه و این حرامه و انسان جهنمی میشه اونا اونطوری میگن بنابراین اختلاف اساسی، اختلاف در الهیات و طبیعیات نیست اونا اختلاف ندارن هرچون هم میگن ما هم میگیم بیه چون مسئله کلامی نیست که مسئله فلسفی نیست از زوائد کفره ولی اصطلاحی الان هست و مقتلو باز برگشتش به استنباطه و یقینا اخباری نمیتونی حرفو بزنه الان یکی از مثلا واقعا پیچیده مسئله پیچیده دیاده بعضی از مواد آقای میگن این مسله بگی چهارشنبه ها ما پنجشنبه ها بریم اوش تحمل کنیم و این قهوه های استنباط خودمون به منصه ظهور برسونیم خیلی نمونه و تاریخش نگذره الان یکی از مسائل خیلی مبتلاوه اینه که در عقد متعه خب مدت هست شخص اگه به ها باشه اده داره این دیگه یه شبهه هست معروف به شبهه شیخ علی که در اون هاشیه دومه هم آقاین حتما خوندید اگه نخوندید مافز زمه پست کنید و پیدا بکنید بخونید و مسترشم الفواعد و مال شیخ خور عاملی صاحب وسایل یه کتابی داره الفواعد و خیلی خیلی مفیده یعنی واقعا فواعد توصیه و رزوی نه الفواعد و تون بله حالا عددش الان ذهنم نیست ولی الفواید توصیه معروفه. مال صاحب مسائله یکی از مسائلی که آورده مطرح کرده همین شبه شیخ علی شبهش چیه این شیخ علی خواسته در مقابل مشهوری حرفی رو بزنه مشکور قایلن در متعه بعد از دخول اده لازمه و هیچ راهی نداره بهتا یک زن رو در ایام عده با بعضی از هیل نمیشین و باز به عقد در حتما باید این عده بگذره انسان 45 روزه یا 60 روزه یا دو طهر دو حیزه هرچی هر چی حداقل پنج روز باید بگذره و یک زن در 45 روز بیشتر از یک نفر نمیتونه عقد کنه رو نمیگه شبهه اینه که اومده گفته نه راه حل داره راه چیه راهحلش راه از مبنای خود مشغوله مشغول میگن اگه متخولون به ها نباشه ازده نداره این یک مبناه مال مشغول مبنای دوم من باز مال مشغول مشبور چی میگن مشغول میگن اگر شخصی مطعه باشه به یک شخصی و دخور شده باشه و این مدت رو بگذره و بعدا بخواد خودش عقب کنه باز عفت نداره خودش حس میخواد باز عقب کنه و اب دیگه گیرش نمیمد باز برگشته به این سقرام اینم باز مبنای خود مشهور. گفته باید تو تا مبنای خود مشهور رو کنار هم بیذاریم لازمش این میشه و این شبهه ما نظریه میشه بنابراین شخصی که زنی رو متعه کرده و دخول شده بهش بعدا مدت رو بخشیده شخص دومی نوبتش رسیده میخواد این رو متعه کنه بنابراین چیزی که اسم نوشتن اون شخص دوم میتونه با این رو مد... بخونه یا نه راحتش اینه طبق دو تا مبناهی مشروع که خود این شخص اولی باز این رو کنه بدون دخول مدتو رو لذا در هر ساعت این زن میتونه زوجه یه نفری باشه حالا این شبه شبهه هست نظریه هست، قابل اثباته قابل اثباتی چی به ساعت و ساعت اومدین ردش کرد. حقیقت همین یعنی راه حلی نفره در احکام تأخیدی اصلا راهی برای یل نیست در این هو تقدی در احکام تقددی هم راه نداره. لذا سرف های اومد این شبه رو شدیددن وسطش کرده تا الان هم همه رفتش میکنن. شو هم اون فیلم قابل بددییه. این نیاز استباد داره. اخباری رو وقتی قا به عدم استباد بشه اینو چطور میخواد جواب بده و هزاران مسئله در عقد دائم که مصح نمیکنن به خاطر اینکه اتفاق نمیفته یا زنی که دیگه طلاق میگیره اینطوری نمیخواد این در مورد مطعه یه که مرسوم بوده و سیره برش ممسق یا مثلا این مسئله. یکی از مسائل حج اینه که شخصی که هج میره یکی از شرایط استطاعتش به تمام معنا اینه که رجوع به کفایت داشته باشه برگرده زندگیش به هم نخوره حالا اگر شخصی رفته باشه در مکه بعد از اعمالش تمام اموالش دوز برده باشه به این قدرت بر برگشتن نداره یا در شهر خودش دوز خونش زده یا شغلش را ازش گرفتن این آیا مجزی از حسیت الاسلام هست یا نه این مجزی نیست باید حسیت الاسلامش رو بعدن بیاد. نیاز به استنباط داره فوقه درش در حیرت هم. در حیرت مطلقا معاصرین نمیتونن بگن چی بگیم به زمان نوعا توقف کردن که دیگری فتحا بگن خب معلوم نیستی که ما چی بگیم نه یعنی حجة اسلامش ثابت نیست که این هجت الاسلام باشه با اینکه بعد از اعمال تمام ایام تشریق هم رد شده تمام شده بعد از اعمال برا خرید پولشو زدن یا قدرت بر برگشت نداره یا اموالشو در شهرش زدن یا شغلش ازش گرفتن چون طول کشید زیارت پنج روزه س و پنج روز طول میکشه این هزینه نیست بیبرنامگی نیست سی و پنج روز به چه دردی میخوره این از هشتون تا سینزه همه پنج روز هم شما بهش ارفاق کن بگیم مدینه میخواد بره جاهای دیگه میخواد بره. سی و پنج روز طول میکشه حالا این میگه الان محل اختلافه نمیتونن فترهای سریح بدن ما چی بگیم بگیم این از چطور اسلام هست یا نیست دستگاه نداریم که تشخیص بده بگیریم رو مسئله نشون که درست یا نه. هنوز نیومده. تو شاید بعدن بیاد هر کسی یه دستگاه بگیری از رو مسئله که بگیری جوابش معلوم باشه نمیمده در حیرتن اصولی در حیرته اخباری چی میخواد بگه؟ ما خاطر الان نمیصرف انسان اخباری باشه واقعا مشکل میشه وقتی اصولی نمیتونه جواب بده اخباری میتونه اینو باید خلاصه از یک راهی وارد بشن که بگن این تکالیف رجوع به کفایت و امثال اینها شرط های موضوعی نبوده شرط های طریقی هست از یک راهی باید وارد بشن بزننش و الا اگه همینطوری بمونه الان در اون صفحه 237 به وقتی گفتم برای ترکیب و تقیید مراجعه کنید برای دوتا جوهر مثال به زاد و راهله زده بودن زاد و راهده دو شرط اساسی برا تحقق استطاعت در حج و موضوعیتم هم داشته مثال زدم و الانم اونو خواستم توضیح بدم این مثال الان گفتم زاد و راهده دوتا جوهره دوتا جوهر چی میشه؟ ترکیب میشه حالا ما چطور استنبات کنیم اگه زاد و راهله مفقود شد یا منعدم شد یا رجوع به کفایت از بین رفت یا نبود یا کشف شد که نبوده چی بگیم؟ نیاز استنبات داره استنبات خیلی خیلی بالا که بعداً وارد میشید ببینید چقدر انسان در حیرت میمونه که چی بگه با این همه اقوال و عدله و استظهارات که اومده و ما در مقابل ها چی میخوایم بگیم؟ پس یه مبنای منسجمی میخواد یکی از اون مسائل اختلافینه که اولا احکام رو تشخیص بدیم اعتباریه یا انتظاییه مثلا یه جزئیت انتظاییه شرطیت انتظاییه مانیت انتظاییه صحت و بطلان انتظاییه کما علیه مشهور. یا نه اینام اعتباریه خب اولین مرحله تشخیص این هست. ما اینا رو خوندیم ولی نمیدونیم اعتباریه یا انتظایی بهترین کتاب برای تشخیص این جنا رو ما از اون بدوش خوب تشخیص بدیم بیاد القواعد والفوائد شهید اولی. متن اخیراً هم خیلی خوب چاپ شده این دفتر تطبیقات چاپش کرده. خیلی خوب. جنا انتظایی یا اعتباریه؟ خبری از انتظار در کلماتشون نیست. به خیلی راحت میشه به نتیجه رسید تا اینکه ما بیاییم ایناره انتظایی بکنیم یا بگیم چیه و امثال اینا اختلاف در این مسائل حول امکان اجرای اصل عملی در حکم انتظاییه که ما ازا شکفی جزئیت صورت کاملت فسلا یکی از مسائل خیلی مبتلابه آیا سوره کامل چون همد جزئیتش ثابت برای نماز فرادا مطلقا برای نماز جماعت هم فل جمله ثابته ولی مشهور میگن مطلقا ثابته یعنی چی؟ یعنی مشهور میگن اگه شما در نماز جماعت بخوای تبعیت از امام بکنی در وقت سوم و چهارم امام باشی و اول دوم خودت باشه و در دومی یا اولی در دومی یقینا در اولی تجویزن اگه بخوای حمد بخونی حمد رو باید تمامش کنی ولی قول دومینه که نه لازم نیست تبعیت مهمتر است. شما بسم الله الرحمن الرحیم و یکی دو تا آیه از حمد خوندی امام رفت رو که شما برون برخلاف مشهور و دلیلم داره هیچ اشکالی هم نداره در سوره اختلاف دارن خود مشهورم قائلا فیل به اینکه که سوره کامل جازیت نداره اون دیگه مثل حمل نیست آیا من در نماز فرادا و جماعت سوره کامل بخونم یا نخونم در جماعت که فتفای مشهور بر عدم در فرادا محل بحثه آیا میتونم در نماز فرادا یک آیه، دو آیه، سه آیه و دیلیست آیه از بقره رو بخونم و بقیهش رو نخونم یک ساعت دارم طول میدم دیگه بس نیست؟ فرشت ها میخوام برن نماز ما بمونه برای آخر وقت و نمیرسه برای حساب اینا چه کنیم؟ دیویست آیه بخونن به جای چهار آیه قلوب الله حد و سوره توحید دست نیست اختلافیه و شک دارن ازا شکفی جزئیت سورت کاملت فسلات او شکفی وقوع خلل فسلات او شکفی سببیت غلیان غلیان نقلیان للحرمت فی اسیر الانبی شک داریم فقط زهب جمعان الالجرایان یعنی جرایان اصل عملی در این احکان اصل ادم جزئیت اصل ادم وقوع خلال در نمازه و اصل ادم سببیت غلیان برای حرمت اسیر الانبی اصل ادم اصل جاری کردن شکل داریم دیگه داریم گفتن اصل میگردن ولیکن در مشهور یعنی فتوای مشهور رفت از او زالده. اونها گفتن نمیشه جاری کنیم به دعوان الاحکام الانتزایی لیست منجزتن ولا معذرتن گفتن احکام انتظایی نه منجزه نه معذره یعنی چی؟ یعنی حدیشت نداره چون حدیشت در مشهور چیه؟ معذریت و منسیزییت دیگه. احکام کام نه من نه معذره. این هوچیت نداره ان لح کا لیست انتظاعی لی سط ولا معذرتتا و این عمل منجه و اول معظر و له ها ها و من ش یا معذره خودشون که بنابراین خودشون و ندارن. منشهی انتظارشون هفتی داره منشهی انتظارشون چیه؟ واقعا مز... مجعول و شرعیه همون موضوعی که شاره قرار داده یا همون حکمی که شار قرار داده و ما این رو یا از حکم انتظار کردیم یا از موضوع انتظار کردیم واقعا مجعول و شرعی چه موضوع باشه و چه حکم باشه و حضا و شرط الاساس فی جریان اصل عملی لا ما ذکروه من ان الشرط ها و كون شيء مجعولن اشاره ولو طبعا نه اینکه شرط عدم جریان اثر انتزائات این باشه که بگیم شرط اینه که یعنی شرط جریان اصل عملی اینه که اون شی مجعول شاره باشه ولو طبعا یعنی قول دوم هم حالا نیاز به توضیح داره معلوم میشه نه نه اونایی که از انتظایات نیست گفتیم که انتظایات یه از حکم شریدار انتظام میشه یا از موضوع حکم شریدار اون آخه انتظایی بهش نمیگن انتظای بهش نمیگن اون رو به احکام تأخیدیه انتظایی بهش نمیگن انتظایی عقلیه همش عقلیه در هم هم هم. نه اونا هم انتظایی نیستن اونا هم انتظایی نیست، هم حالا خوب شد من این توضیح میدم خوب شد. در انتظایی دست جاری میشه یا نمیشه مشهور میگن نمیشه سه تا قوله این الان مخلوط نمشتم این نیاز به چیز داره چون خیلی مبهمه فا این نهاز شرط لیسته به شرطن اصول کیفه و نحن و نجیری الاستصابه فل موضوعات خارجیه مثل بقای حیات زید حیات زید از موضوعات خارجی است حیات زید که حکم شرعی نیست موضوع حکم شرعیه. و استصحاب بقای شهر رمضان. شهر رمضان که حکم نیست موضوع حکم شرعی و غیرهی و یلیست اصلا نه حیات زید مجعول شرعیه نه شهر رمضان مجعول شرعیه ولو طبعا مجعول نیست اینا گفتن شرط اساسی برای جرایان اصل عملی اینه که اون چیزی که درش میخوایم ازجاره کنیم مجعول شاره باشه ولو طبعا این حرف درست نیست به خاطر اینکه حیات زید مجبور شرعی نیست استثناب درش راه داره شهر رمضان مجبور شرعی نیست واقعیت خارجی استثناب درش راه داره حالا این قول رو توضیح میدم الان این مثالی که ازونه بکن فلاغوت توینگون مذهب و اصل عملی ممنه یترتب علیه اثر اصل عملی در چیزی جاری میشه که اثری از تنجیز و تعذیل برش مترتب بشه و انتظایات اثر اینطوری نداره حالا اینه کبرای کنید نیاز به اثبات داره بله ای باید در حکم شرعی او موضوع الحکم شرعی بنابراین یا در حکم شرعی اصل عملی جاری میشه یا در موضوع حکم شرعی و انتظایات نه حکم شرعی نه موضوع حكم شرعی و قد افاد المحقق الحمدانی في تعليقته الكريم على الرسائل صفحه 26 ما حاصله ان الاحكام الوزیه بناءا على كونها انتزائيا ليست هي بنفسها مجاريا للأصول العمليه اذ لا تعسل لها فهي تابعه لمنشئ انتزائها که شیخ انصاری این طور میگه. و اما بنا وان های اعتباری مستقله فل اصل الجاری فیها لیسه و الا این حرف ایشون و و و فلوافیت کلامون تونی کلام مزمار شبیه کلام مؤخره عمدانی اینا واسه مراجعه کنید اینا قائل به تفصیل بینه، این جهتام وظی انتظاییان یا یعنی شیخ انساری از کجا به این نظر یه رسید که حکام وضعی انتظاییه از حرف خاضل تونی در واقعیه یعنی اون یک جرقهی به ذهن شیخ انساری زد که حکام وضعی انتظایی باشد حالا چه ای داره؟ این سمرش فقهیه و خیلی مهمه و اخباری هستن قبول حالی است که این و شد که افرادی دارند قبل از اندونزیا نبود لایسکو بر اندونزیا نبود و بر اندونزیا زاتی شدیشده؟ تا خب برای برای نه. گفتم دیگه برام یاد معتباری دیگه. همین اول جلسه از سوال نیست، این انتظای نیست. من علم به صفقت زیت داشتم. کوبلا چیو؟ کوبلا اینکه موضوع در احکام جاری نمیشه، حالا هر چی به ذهنتون میرسه چه بنویسید، این خودمون اختیار می‌کنیم. چیزایی که مشهور دارن میگن اینه. کلمات مشهور رو اگه بخوام بکنیم در مقام رد اختلافاتشون خوب مشکل میشه. هر چی میگن ما همونه میگیم. بحر ذت و نقیضش باید معلوم باشه. ذت و نقید هست هر پاشون یا نیست. اینا میگن اگه احکام وضعی انتظایی باشه، مجرای هیچ اصلی نیست. اگر بخواد اعتباری باشه، احکام محقق همدانی و فاضل تونی میگه مجرای استصاب فقط اون سه تا از راه نداره امتظایی؟ اگه به نه از مقدم میگه چیز دیگه است دیگه شما چرا شک در این داری؟ چون شک در قبلش داری؟ مثلا ادالت زید متقبلن به فقاحتش بود من چرا شکر در فقاحتش در دارم؟ چون شکر در فقاهتش پیدا کردم یه مسئله سختی پرسیدم بلد نمود منشای انتظاش متحرک میشه متغیر میشه نزا شکر در اون مسبب میشه حالا یکی از سمرات مهم بله بله ها یعنی شما از دل یک چیزی چیزی دیگر در آوردین از جواز تکلیفی مباشرت زن و مرد زوجیت رو انتظا کردیم ولی بله واقعیت ندارم ذهنی بگو شما بهش بگو ذهنی انتزاعیه، بله در اعتباری اعتبار میشه یک امری اعتبار میشه شما رئیس باشی ریاست انتظایی یا اعتباریه ریاست رو به شما دادن نه که من از شما ریاست رو انتظا کردم یکی از مسائلی که اختلافی و مهم هست جز سمرات فقیه و از موارد استنباط حساب میشه. و اخباری قینع قائل نیست. از نظر اخباری جواب این مسئله چی میشه؟ قول نه سمره تزهره فل من هیچ سر جریانی بنو اندال قول بکن الوظیات اتباریا تن مجوزت تن بل استقلال اتباریا نیشی یعنی, یعنی مجوز به استقلال و منهیس و عدم جریانی على القول بکن الوزیاد منتظهتن من الاحكام اعتباریت تکلیفیه و توضیح و ذالک انهول و احکام وضعی یا اعتباریه تا فردا اقای این وقت دارن به این نتیجه برسن احکام وضعی رو چما انتظاهی میدونید یا اعتباری میدونید کلام شهید اول رو در الفوائد و بخونید کلام شهید صدرم از حلقات حلقه اول، دوم و سوم بخونید. و تا فردا معلوم میشه. رو میدونید یا ما فرض حالا بدیم. ماهیت این رو آره مخواهیم تشخیص بدیم شیخ انصاری تمام احکام وضعیه رو انتظاری میدونه مطلقا فازل هم ظاهرش همینه وقت چه ای برش مترتبه؟ چه سمره برش مترتبه؟ نه اگر ممکن باشد اگر تابعه علیه المحقق النوعی ثمره تنها متن بر اینکه چی اگر مطلب تکیه ریلا نداره یقینا نداره نه یه ثمره‌ای از نظر اصولی برایش متراتب بشه اون که اگه نباشه اینم نیست دیگه چون صالحه انطباق موضوع میشه ولی ثمره برایش متراتب کرده ناینی نا در فواید در همین بحث. اوائد استصاب که از احکام وضعی و اعتباری داره بخش میکنه اونجا آورده و قائل شده به اینکه مبنای ما اینطوریه به خاطر اینکه اگه قایل به انتظاییات بشیم انتظاییت وضعیات بشیم لازمش همین قوله و من اونو در جزوه ننوشتم به خاطر اینکه وقت نبود حالا اگه پیدا درکردید اونم بینویسیم لو فور زن نه اهدم خوب دقت کنید اگر یک شخصی بر یک ی عقد علا طفلت طف تفل. طف نهی سنش کم باشه طف یعنی ضعیف الاراده اراده چرا ضعیف و اراده است؟ به خواهدی طف از سه تا حرفه وسطش فه هر کلمهی وسطش فا باشه در نهایت زرف هر کلمهی وسطش فه باشه البته مشروط به یک شرطی اون شرط خودتون پیدا کنه حالا طفل یعنی هر از این زعیف اراده باشه و از خودش عبارتی نداره ای نداره هیچ تشخیطی نداره میخواد سنش کم باشه، میخواد زیاد باشه ولو از نظر احکام تکلیفیه بالغ هم شده باشه و این نسبت به ازدواج بلوغ یک امر دیگه ایه قد عقدر حال طفلنس غیر بالغه حالا بعد اینکه موضوع منقعه باشه گفتیم بعد چه تو سه ساله بود. ا کردن برای اینکه به کسی دیگه ندن و بمونه و اینم بره تو نجف درسشو بخونه بخون و برگرده یعنی رو نوشته. و ثم ش بعد از ها نه او تلق بعد از بلوغش بهش زنگ زدن گفتن این بالغ شده بیا ببرش یا پست کنیم بر. شک کرد که آیا طلاق داده یا طلاق نداده شک داره در طلاقش فهل یمکن وینه زن اثبات و تلک احکام تکلیفیه مترتبت علیها من طریق استصاب زوجیه املا یمکن میتونم در مواد شک در طلاق استصاب زوجیت بکنم و بگم هنوز طلاق ندادم و تمام آثار زوجیت برش مترتب بشه یا نمیتونم آثاری که بر زوجیت مترتب میشه در دو قسم جواب: ان لا یجری الاستصحاب بناعا عل القول بانها انها انتظائیتون. اگر انتزایی باشه نمیشه یعنی اگر زوجیت انتظایی باشه که شیخ انصاری میگه استصحاب درش جاری نمیشه ول وجم و فیه ان الاحکام تکلیفیه لا قسمی احکام تکفیه که ما در رابطه با این صفه تغییره غیر بالغ داریم و الان بالغ شده دو قسمه ماکان صابتن لمطلب زوجه ما کان صابتا مطلق الزوجه مع قطع النظر ان کانها بالغتا ام غیرها بعضی از احکام بر زوجیت مترتب میشه چه بالغ باشه چه بالغ نباشه مثل وجوب انفاق چه بالغ باشه چه نباشه وجوب انفاق رو داره ولی بعدی از احکام مترتب میشه بر زوجه بالغ. اگر بالغ نباشه اون حکم تکلیفی مترتب نمیشه یعنی مقتضی اون حکم تکلیفی قلوق این زنه strlen این زنه این شخصه اون حکم مترتب نمیشه مقتضی این حکم تکلیفی شرعی قلوق این دختره که اگر بالغ باشه اون حکم مترتبه اسم اول مثال برای مواردی که مترتب بر زوجه بالغه باشه جواز مباشرت که حکمش واضح حالا قسم اولی که محاکان اصابتن مطلق الزوجیه چه بالغ باشه چه نباشه مثل وجوب انفاق و حاضر لحکام تکلیفیه به نفسها تکون مجرا مجره خود وجوب انفاق ده سال قبل بوده الان هم شک در زوجیت اینها دارن باز همون وجوب انفاق استصحاب میشه خودشون به نفس مجرای استثابن ها متیقنتون سابقن و مشکوکتون بقاان و لاحقن فتستسب من دون حاجتن اجراء اجراع الاستثاب زوجیت المنتزعة من الحكم تکلیفی فهین ازن وجوب انفاق معلومون حدوثن و مشکوکن بقاان فیصفتو بالاستثاب این محل بست بس ولی اون احکامی که بعد زوجه بالغ مترتب میشه مثل جواز مباشرت الان بعد از بلوخش شکی در طلاقش دارم اون احکام مترتب میشه یا نمیشه این محل استنباته ماکان حسابتن لخصوص زوجت بالغه من قبیل جواز مباشرت فلای اون که نسباته مطلقا مطلقا میش... نمیشی نسبات کرد لا من طریق الاستصابی نفس الحکم تکلیفی که جواز مباشرت باشه و لا انطریق استصاب نفس الحکم الوزیر که زوجیت باشه در هیچ کدامش راه نداره اما جواز تکلیفی مباشرت راه نداره فلانش شکفیه لیسم من قبیل شکف البقا این در بقا نیست که از ارکان جریان استثاب اینه که شک ما در بقا باشه علم به حدوث و شک در بقا الان این جواز تکلیفی مباشرت مشکوک البقا نیست این مشکوک الحدوثه این مشکوک الحدوثه مشکوک البقا نیست برابنی مجرای نمیتونه باشه؟ و بله و شک کن فلودوس و ظال که للعلم به عدم قبل البلوغ جزمن قبل از بلوغ که این جواز مباشرت نبود اینو همه میدونن لنموضوعه خصوص زوجت البالغه لا مطلق زوجه ول مفروض انه بعد البلوغ لم نعلم به انها زوجتون چون شک در طلاقش دارم معلوم زوجیت باشه شک در طلاقش دارم زوجیت متزلزله و شک الشک فی ها فیکون شک جواز الوطء من سنخ شک فی فل الحدوث فلا و ارکان الاستصحابیه و پس در جواز تکلیفی مباشرت نمیشه استصحاب جاری کرد اما جواز وسی در خود اون زوجیت اون هم میگه راه نداره فلا يجري الاستصحاب زوجیت لعدم تماميه اركان الاستصحاب نسبت اليها ايزن لان المفروض كونها منتزعتا عن جواز المباشره شلون انتزائيه ديگه فرض ما اینه. فلا ما حاله يكون شكي ها ذالجواز موك بنده الشك في منشه انتزائيه ومن و والواضح أن الشك في المنشه وجب الشك في ما ينتزع منه وقتی در منشأ انتزاع شما شک بکنی خود اون منتزع مشکوب میشه و حيث ان الشك في الجواز من قبيل الشك في الحدوث يگون الشك في زوجيه المنتزع من ايزن من قبيل الشك ف فل الحدوث فلا يجري الاستصحاب بنابر انتزاعات پس راه نداره پس باید این شخصی بگه یعنی از نظر اصولی ما الان این نتونستیم تشخیص بدیم جواز تکلیفی و از این ها رو از نظر اصولی ما نتونستیم جواب بدیم جواب فقی داره یا نداره؟ جواب فقیش اینجا نمیشتن ولی از نظر اصولی راهی نداره و اما بنا عنال قول به انززوجی اعتباریتون مجرولتون بالاستقلال و یوم کنو اثباتون جواز من طریق استصاب نفس زوجی یعنی همین جواز مترتب می شه تمامیت ارکان استصحاب ها و این لم تکون الارکان تامتن به نسبت الی خصوص جواز مباشره علا کل تقدیر در موارد شک در جواز مباشرت راهی برای اثباتش نیست. والحمد این بعدیه شو دیگه آقایون خودشون بخونن. ما ما خیلی در این وادی طول نکشه چون مطالب زیاده بخوام همه را از روشن بخونیم نمیشه حالا فیل جمله برمیشد که چی میخواد بگه موضوع مرکب و از چهارتان فر براش آوردیم دقیقشو دیگه تا الان هرچی آقاین جزو گرفتن خودشون بخونیم دو همه رو؟ بردشت یعنی اون فرد ببینیم مقنید و بسیل چی هم؟ یعنی اصلافه ای صدو چیدی رو هم که